دوست خوبم هم به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش اومدیم. ضمن بررسی کتاب های انبیا حالا به انتهای کتاب دانیال رسیدیم. چیزهای زیادی هست که میتونیم از زندگی اون یاد بگیریم. مثلا نبوت ها. چیزهای زیادی هست که امروز باید بهشون بپردازیم. پس مستقیم میریم به سوراخ درس امروزمون. در دو جلسه قبلی دیدیم که کتاب دانیال شامل دوازده باب هست و این دوازده باب بر اساس محتویات اونها به دو بخش مساوی تقسیم شده. شش بخش اول کتاب دانیال وقایع تاریخی هستند و درک اونها کار مشکلی نیست و کاربرد های واضحی داره. اگرچه شش باب بعدی کتاب دانیال بسیار مشکل هستند. چون که از باب های هفت تا دوازده رویاهای نبوتی و مکاشفاتی کتاب دانیال رو میبینیم. در بابها سخت هست، همونطور که مکاشفات و نبوّت‌های کتاب حزقیال و کتاب مکاشفه رو دیدیم که سخت هستند همونطور که قبلا گفتم اینها متون آپوکالیپتیک هستند ببین معنی که نویسندگان این کتاب‌ها حجاب رو برمی‌دارند و رویاها و مکاشفات خدا رو به ما نشون میدن اونها چیزهایی رو به ما نشون میدن که ما با خرد انسانی خود نمیتونیم اونها رو درک کنیم مگر اینکه روح القدس پرده از روی اونها برداره وقتی که به دومین بخش از کتاب دانیال می‌رسیم، ها و نبوت‌های مکاشفاتی او را می‌بینیم. ما لازمه که از محتوای این مکاشفات چیزی رو درک کنیم. به اعتقاد من ما اونجا قدر محتوای نبوت‌های مکاشفاتی دانیال رو می‌دونیم که می‌بینیم او نبوکت نصر در باب دوم کتاب دانیال رو به طور خارق‌العاده‌ای برای او تعبیر میکنه. وقتی نصر اون خواب رو دید به تمام حکیمان دربارش گفت من باید تعبیر این خواب رو بدونم بنابراین میخوام ببینم که آیا شما واقعا تعبیر رو از ماوره و طبیعه میگیرید یا نه به من بگید خواب من چی بوده و بعد اون رو تعبیر کنید مردان حکیم گفتن هیچکس کس نمیتونه این کار رو بکنه مگر اینکه روح خدایان در او ساکن باشه و همه میدونند که خدایان در انسان زندگی نمیکنند بعد دانیال گفت این درست همون جاییه که شما اشتباه میکنید خدا در انسان زندگی می کنه و خدایی که در انسان زندگی میکنه میتونه به من نبوخذ نصر چه خوابی دیده و تعبیر خواب او چیه دانیال با نبوکت نصر ملاقات کرد و به او گفت که چه خوابی دیده و تعبیر خواب او چیه این چیزی بود که نبوکت نصر به دانیال گفت این چیزی بود که دانیال به نبوخذ نصر گفت ای پادشاه هنگامی که در خواب بودی درباره آینده خواب دیدی و خدا که آشکار کننده رازهای پنهان است، از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به تو خبر داده است. اما این راز که بر من آشکار شده به خاطر این نیست که دانشمندتر از دیگران هستم، بلکه به این جهت هست که پادشاه تعبیر خواب خود را بداند و از معنای افکاری که به خاطرش رسیده است آگاه شود. ای پادشاه، تو در خواب مجسمه بزرگی دیدی که بسیار درخشان و ترسناک بود. سر آن از طلای خالص ساخته شده بود و سینه و بازوهایش از نقره و شکم و رانهایش از برونز. ساقهای او از آهن و پاهایش قسمتی از آهن و قسمتی از گل بود. وقتی تو به آن نگاه می کردی تخت سنگ بزرگی بدون اینکه کسی به آن دست بزند پاهای آهنی و گلی آن مجسمه را در هم شکست. آنگاه آهن، گل، برونز، نقره و طلا همه با هم آنچنان چنان خرد شدند که با دانان را مانند گرد و غبار هنگام خرمنکوبی پراکنده نمود که دیگر اثری از آن بر جای نماند دانیال خواب به نبوکد نصر رو بدین گونه تعبیر کرد که اون مجسمه چهار پادشاهی مختلف را به تصویر میکشه. سر طلایی نشان دهنده بابل قسمت نقره‌ای نشانگر پارسیان بود که بر بابلی ها غلبه کردند قسمت برنزی یونانیان را نشون میداد که بر پارسیان غلبه کردند و پاهای آهنی امپراتوری روم رو نشون میده که به دو پادشاهی تقسیم شده پادشاهی غرب و شرق. مفسرین پاهای گلی و آهنی رو با هم ترکیب کردند. بعضی از محققین برای نقدن که دهنده ها نشاندهنده های کوچک بودند که هرگز به پادشاهی دنیا نرسیدند و یا قدرت جهانی پیدا نکردند. بعضیها برای نقدن که انگشتان پا نشانی از این هست که امپراتوری روم به ده قسمت تقسیم میشه. به هر حال این خوابی بود که نبوکت نسر دیده بود و تعبیری که دانیال از خواب او کرده بود. مهمترین قسمت خواب نبوکت نسر سخره ای بود که به طور موجزاسایی از کوه جدا شد و بر روی مجسمه افتاد و اون رو نابود کرد. این صخره بعد از اون که تبدیل به کوهی شد که تمام زمین رو در بر گرفت، دانیال گفت که اون سخره پادشاهی خدا هست که است و بر تمام دنیا قلبه خواهد کرد. اولین تعبیر خواب نبوکت نصر به ما الگویی میده و ما رو راهنمایی میکنه که وقتی قصد داریم رویاها و مکاشفات کتاب دانیال رو که بسیار سخت هستند تعبیر کنیم از اون بهره ببریم البته تعبیر این رویاها و مکاشفات غیر ممکن نیست اما بسیار کار سختیه فقط روح القدس میتونه به شما کمک کنه که این رویاها رو درک کنید چون اونها به چیزهای آینده اشاره میکنه در باب شانزدهم یوحنا گفته شده که یکی از خدمات خاص روح القدس اینه که چیزهای آینده رو برای ما آشکار کنه اینجا چند گام هست که به درک و کاربرد رویاها و مکاشفات کتاب دانیال کمک میکنه. وقتی که به این رویاها و نبوت های مکاشفه ای می رسید اونها رو طبق این گام بررسی کنید اول سمبول های رو ملاحظه کنید در رویای اولی که دانیال داشت که باب هفت ثبت شده سمبولهای رویا، به نهوی با اولین خواب نبوکت نسر مشابه هستند. دانیال چهار وحش شدی. چهار باد بزرگ شروع به وزیدن بر روی دریا کردند و بعد چهار وحش از دریا بیرون آمدند. وحش چهار روم بسیار ترسناک و مهیب بود و دیگر وحش ها را نابود کرد. اما قبل از نابودی ده شاخ از آن بیرون آمد. بعد از میان آنها شاخ کوچک دیگری بر آمد و پیش رویش سه شاخ از آن شاخهای اول از ریشه کنده شد این شاخ کوچک چشمها و دهان بزرگی داشت و سخنانی تکبرآمیز می گفت حالا این تقریبا غیرعادی و عجیبه اینطور نیست؟ همه چیز عجیب و غیرعادی هست می تونه عنوان خوبی برای کتاب دانیال باشه این انبیا رویاهای عجیب و ای داشتن معمولا وقتی به تعبیری در کتاب مقدس اولویت قائل میشند شما میتونید بفهمید که اون تعبیر درست هست. وقتی که به این رویای دانیال می رسید، اول سمبول ها رو ملاحظه کنید و بعد اعمال متقابل بین سمبول رو ملاحظه کنید و بعد تعبیراتی که در متن داده شده ملاحظه کنید. یادتون باشه که اینها تعبیرات الهامی در متن هستند. بعد از اینکه این کار رو کردید با دعا از روح القدس بخواهید که بهتون بگه معنی تمام اینها چیه. از او بپرسید که این متن چی میگه، چه معنی داره و برای من چه معنی داره؟ در باب هفت دانیال رویایی داره. تعبیر الهامی رویای دانیال به ما میگه که دوباره به چهار پادشاهی نگاه کنیم. اما روح من دانیال در جسدم مدهوش شد و رویاهای سرم مرا مزترب ساخت و به یکی از حاضرین نزدیک شده حقیقت این همه امور را از او پرسیدم و او به من تکلم نموده تفسیر امور را برای من بیان کرد که این وحوش عظیمی که عدد ایشان چهار است چهار پادشاه می باشند که از زمین خواهند برخاست. اما مقدسان حضرت علا سلطنت را خواهند یافت و ممنکت را تا به عبد و تا عبدالعاباد متصرف خواهند بود آنگاه آرزو داشتم که حقیقت امر را درباره وحش چهار که مخالف همه دیگران و بسیار هولناک بود و دندانهای آهنین و چنگالهای برنجین داشت و سایرین را میخورد و پاره پاره می کرد و به پایهای خود پایمال مینمود بدانم و کیفیت ده شاخ که بر سر او بود و آن دیگری که برآمد و پیش روی او سه شاخ افتاد یعنی آن شاخی که چشمان و دهانی را که سخنان تکبر میگفت داشت و نمایش او از رفقایش سختتر بود پس ملاحظه کردم و این شاخ با مقدسان جنگ کرده بر ایشان استیلا یافت تا که قدیم و آمد و داوری به مقدسان حضرت اعلی تسلیم شد و زمانی رسید که مقدسان ملکوت را به تصرف آوردند پس او چنین گفت وحش چهارم سلطنت چهارمین بر زمین خواهد بود و مخالف همه سلطنت ها خواهد بود و تمامی جهان را خواهد خورد و آن را پایمال نموده پاره پاره خواهد کرد و ده شاخ از این مملکت ده پادشاه میباشند که خواهند برخاست و دیگری بعد از ایشان برخواهد خواست و او مخالف اولین خواهد بود و سپات شاه را به زیر خواهد افکند. و سخنان به زد حضرت اعلی خواهد گفت و مقدسان حضرت اعلی را ذلیل خواهد ساخت و قصد تبدیل نمودن زمانها و شرایع را خواهد نمود و ایشان تا زمانی و دو زمان و نصف زمان به دست او تسلیم خواهند شد. پس دیوان برپا خواهد شد و سلطنت او را از او گرفته آن را تا به انتها تباه و تلف خواهند نمود. و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آسمان هاست به قوم مقدسان حضرت اعلی داده خواهد شد که ملکوت او ملکوت است و جمیع ممالک او را عبادت و اطاعت خواهند نمود. انتهای امر تا به اینجا است. حالا وقتی دانیال این رویا رو دریافت میکنه میگه می, می من دانیال مرا بسیار مضطرب نمود و حیعتم در من متغیر گشت لیکن این امر را در دل خود نگاه داشتم وقتی این رویا را از طریق گام هایی که گفتم بررسی کنید فکر می کنم بتونید بگید یقینا این صحبت مربوط به چهار پادشاهی بزرگ دنیا هست هر وقت که شما شاخها را در کتاب مقدس می بینید اونها نشاندهنده قدرت هستن مانند شاخی که یک حیوان داره و توسط اون حیوانات دیگر را زخمی این ده شاخ و یک شاخ کوچک قدرت‌ها و یا احتمالاً ها رو نشون می‌دهند. بسیاری از مردم این چهار پادشاهی رو به احیای مجدد امپراتوری روم تعبیر می‌کنند. در رویای نصر پاهای آهنی نشاندهنده امپراتوری روم هست. بعضیها میگن این رویا هم امپراتوری روم رو نشون می‌ده، اما امپراتوری تجدید حیات یافته در زمان آینده. بعضیها میگن نه، این چهار پادشاهی در باب هفت بسیار حولناکتر از بقیه هست. این مانند اون سنگی که از کوه جدا شد و بر پاهای مجسمه نبوکدنصر افتاد و تمامی اون مجسمه را از هم پاشید واضحه که این تصویری از پادشاهی خداست این از بقیه متفاوت هست. عظیم و وحشتناکه و به لحاظی غضب خدا را نشون میده ما نباید در مورد تفسیر این چیزها متأصبانه عمل کنیم باید وقتی چنین چیزهایی رو می می‌کنیم بسیار فروتنانه عمل کنیم چه ما تمام این جزئیات رو درست فهمیده باشیم یا نه یک حقیقت بزرگ در دانیال باب هفت هست که ما میتونیم با اون کنار بیایم و اون اینه اگر شما یکی از افراد قوم خدا هستید شما در طرف تیم برنده هستید چون که تمامی این ها با پیغامی مثبت خاتمه پیدا می‌کنه اونها این حقیقت رو به تصویر میکشند که پادشاهی خدا بر تمامی پادشاهی های دیگر غلبه میکنه و یک پادشاهی ابدی هست. این یک یاداوری خوشبینانه هست که میتونید با اون در رویای چهاروحش وحش دانیال تامل کنید در باب هشت دانیال رویای دیگه ای داره که به رویای قوچ و بز معروف هست. دانیال بارها اینطور میگه من دیدم من دیدم من دیدم این یک پیشگویی است که رویاها و مکاشفاتی داره دانیال چشمان خودش رو برافراشت و چی دید؟ او قوچی رو دید که در ساحل رودخانه ایستاده و دوتا شاخ داره هر دو شاخ بلند بودند اما یکی از دیگری بلندتر بود آنکه بلندتر بود آخر برآمد بعدها به او گفته میشه که این شاخ بلندتر امپراتوری ماد و هست. امپراتوری ماد و پارس ابرقدرت جهانی بود که بر بابل غلبه کرد پارسیان از پادشاهی ماتها بزرگتر شدن. این شاخ بلند تصویری از اون پادشاهی هست. دانیال بعدها این تعبیر الهامی رو میده اما اول او یک بز میبینه. این بز نر شاخ بسیار بزرگی در وسط چشمانش داره. با اون یک شاخ بزرگ بز نر قوچی رو که دو شاخ داشت پاره میکنه. تعبیر الهامی به ما میگه که اون شاخ بزرگ بز پادشاهی یونان بود. یونانی ها بر فارسیان غلبه کردند این بیشتر یک درس تاریخی هست. دانیال بعد فراتر از پادشاهی یونان و پارس میره و مکاشفاتی دریافت میکنه او به آینده میره به زمانهای آینده و این نبوت رو آشکار میکنه مشخصه که دانیال خیلی فراتر از امپراتوری پارس و یونان میره بعد به او گفته میشه رویا رو مهر کن چون که مربوط به ایام آخر میباشد من فکر میکنم که ما مطمئن نیم که در اواخر رویای دانیال، بعد از اینکه در سه تاریخ رو به ما میده و نبوتی که قرار بود به زودی انجام بشه، دانیال آینده رو میبینه. اون رویا انصافاً تعبیرش بسیار آسونه چون که خود متن به ما میگه که موضوع اون مغلوب شدن پارس توسط یونان هست. حالا بیایید مهمترین و ارزشمندترین نبوت مسیحایی دانیال رو بررسی کنیم که از نبوت مسیحایی دیگر بیا در احت قدیم مهمتر بود. به اون نبوت دانیال رویای هفتاد هفته گفته میشه این رویا بعد از یکی از عجیب ترین دعاهای موجود در کلام خدا اومده یادتونه که گفتیم دانیال برای خودش خصوصیات روحانی خاصی داشت و این خصوصیات روحانی برای او این امکان رو فراهم کرد که از عهده اسارت بر بیاد و بتونه وظیفهش رو در حوزه سیاسی بابل به انجام برسونه سه خصوصیت روحانی دانیال بارک بودند از اینها دانیال قطعا به خدا ایمان داشت دانیال قطعا به دعا ایمان داشت و قطعا به مشیت و اهداف خدا ایمان داشت که او رو به لحاظ استراتژیکی در بابل قرار داده بابلی ها که به دانیال حسادت میکردند سعی کردند دور متهم کنند اما نتونستند این کار را بکنند تنها موردی که تونستند دور متهم کنند این واقعیت بود که او همیشه دعا میکرد پس اونها قانونی وعز کردند و گفتند کسی نمیتونه دعا کنه اما دانیال به دعاش ادامه داد. در باب شش کتاب دانیال به ما گفته شده که دعا یکی از خصوصیات روحانی دانیال بود. دانیال دقیقا اینو میگفت من نمیتونم در بابل زندگی کنم و دعا نکنم. باید دعا کنم. دانیال به دعا ادامه داد و به چاه شیران انداخته شد چون دعا یکی از اعتقادات بیچون و چرای دانیال بود. در باب نه وقتی میشنوید که دانیال دعا میکنه درست قبل از اینکه بزرگترین مکاشفه رویای 70 هفته رو دریافت کنه متوجه میشید که این مرد کسی بود که در تمام اوقات عمر دعا میکرد وقتی که میشنوید کسی در گروه یا در جمع دعا میکنه میتونید بگید که آیا اون شخص زیاد دعا میکنه یا نه شما نمیتونید بگید که این افراد اولین باری هست که در زندگیشون دعا میکنن یا نه من وقتی دانشجو بودم در یک کلیسای کوچک کار میکردم از یکی از برادرها خواستم که دعا کنه من یک گروه پرستشی رو اداره می کردم و یکی از برادران جوانم رو به عنوان خادم آماده میکردم و قبلا توی زندگیش یک چنین کاری انجام نداده بود وقتی که قرار شد سینی هدایا رو به چرخونه یکی از دوستانم که با من در اون کلیسا کار میکرد و نمیدونست که برادر من هرگز در جاهای عمومی دعا نکرده از او خواست که سینی رو برکت بده برادر من فقط گفت. خدايا متشکرم و شروع کرد به جمعآوری هدایا اون کوتاه دعایی بود که من به عمرم شنیده بودم او واقعا یک جنگنده در دعا نبود و این رو نشون داد وقتی که دعای دانیال رو میشنوید که در باب نه اومده بلافاصله میفهمید که دعای مردی رو میخونید که صبح و ظهر و شب دعا میکرد دانیال طوری دعا میکرد که گویی زندگیش در بابل بستگی به با اون دعا داره من دعای دانیال رو چون طولانی هست نمیخوام بخونم اما اگه دعای دانیال رو در باب نه بخونید، خواهید فهمید که اون دعا منتهی به رویای زیبای هفتاد هفته میشه. دعای بزرگ دانیال رو بخونید و ملاحظه کنید که چند بار او با زمایر شخصی خدا رو مخاطب قرار میده. دانیال در این دعا حدود چهل یا پنجاه بار خدا رو با زمایر شخصی خطاب میکنه. وقتی دانیال دعا میکنه، دعاش حول محور خدا هست. نامتمرکز بر دانیال این چیزی که او وقتی این دعای بزرگ رو میکنه بهش اهمیت میده دانیال به ما میگه که وقتی کتابها یا تومارهای نبوتی ارمیا رو میخونده متوجه میشه که بر اساس های ارمیا وقت بازگشت اوسرا از اسارت بابل فرا رسیده اشعیا و ارمیا هر دو پیشبینی کرده بودند که بعد از اینکه قوم یهودا به مدت هفتاد سال در بابل در اسیری بودند به سرزمین خودشان باز خواهند گشت. وقتی که شما نام پادشاهان مختلفی که در بابهای مختلف کتاب دانیال به آنها اشاره شده میخونید، متوجه میشید که وقتی داریوش مادی بر سر قدرت بوده، به پایان هفتاد سال دوره اسارت رسیدید. در چهار باب اول کتاب دانیال، پادشاهی که بر سر قدرت بود نبوکت نصر بود. در باب 5 بلشصر پسر نبوخت نصر حکومت میکنه. در باب شش داریوش مادی حکومت میکنه. حالا داریوش مادی امپراتوری واقعی ماد و پارس نبود. اون موقع او چیزی شبیه به صدر و یا فرماندار بخشای خاصی از سرزمین بزرگی بود که کوروش کبیر پادشاه آن بود. در اون زمان کوروش کبیر بر سر قدرت بوده اما این واقعیت که داریوش مادی رو در سیاست به شما نشون میده متوجه میشید که به انتهای زمان هفتاد سالی که نبوت شده بود قوم یهودا در اسارت خواهند بود رسیده ای. و وقت بازگشت قوم به سرزمینشان رسیده. وقتی دانیال اون دعای باشکوه رو میکرده او همینطور بر نبوت ارمیا تعمل میکرد. دانیال سرشار از این حقیقت بود که ارمیا گفته اصارت اونها هفتاد سال طول خواهد کشید و هفتاد سال باید تمام شده باشه. وقتی دانیال در این مورد دعا میکرد او به گناهان خودش و به گناهان قوم اعتراف کرد. همونطور که گفتم دانیال یکی از پاکترین شخصیت ها در کتاب مقدس هست او اونقدر پاک بود که شما نمیتونید یک گناه پیدا کنید که بشه او رو متهم کرد. شنیدم که یکی از محققین بزرگ میگفت تنها راهی که میتونید بفهمید دانیال گناهکار بود اینه که خود او اعتراف میکرد که گناهکاره. اگر گناهکار نبود پس او یک دروغگو بود و بنابراین اگر دروغ میگفت او یک گناهکار بود. تقریبا این تنها راهیه که میتونید در زندگی دانیال گناهی پیدا کنید. دانیال یک چنین شخص پاکی هست. با این حال او خودش رو گناهکار توصیف میکنه چونکه قوم او گناهکار بودن و او سی و دو بار در این دعا میگه گناهان ما، ما گناه ورزیده ایم. دانیال بارها و بارها اینو تکرار میکنه. او از خدا طلب بخشش میکنه. تمامی مردان خدا میدونند که خدا میبخشه. اما چیزی که در قلب دانیال بود، این بود. او گفت خدایا، تو نه تنها مایلی ما رو ببخشی، بلکه تو در تمامی بلاهایی که به ما آوردی عادل هستی. تنبیه در حال تمام شدن هست و دانیال نه تنها از این حقیقت که خدا اونها رو خواهد بخشید هیجان زده هست، بلکه میدونه که خدا اونها رو نجات خواهد داد. خدا قوم یهودا رو به زادگاهشون باز خواهد گردون. در دانیال باب نه وقتی او با دلسوزی عظیمی دعا میکنه، میگه من خادم تو هستم. او به نام تو، قوم تو، شهر تو، حقیقت تو، عدالت تو، خشم تو، غضب تو، فرامین تو، رحمت عظیم تو، خادم تو، انبیاء تو، شریعت تو، اعمال عادلانه تو، چشمان تو اشاره میکنه. بعدو میگه خدایا یا به خاطر خودت و به خاطر شهر خودت و قوم خودت و نام خودت ما رو به شهر اورشلیم بازگردان. ما رو به کشورمون اسرائیل بازگردان. دعای عظیم دانیال این گونه است. وقتی مسیح میاد که آمدن او رو دانیال در مکاشفه بزرگ 70 هفته پیش گویی کرده بود، مسیح به ما یاد میده که چطور دعا کنیم. او به ما نمونه دعای شاگردان رو میده. بعضی ها به اون دعای خداوند میگن اما عملا اون دعایی نیست که خداوند کرده. چون او هرگز طلب بخشش از گناهان نمیکنه. وقتی عیسی دعایی رو به شاگردانش نشون میده که چطور دعا کنند، او چیزی در مورد اولویت در دعا به ما نشون میده ریژنالد توماس یک خادم پروتستان میگفت بسیاری از مردم وقتی دعا میکنند و به خلوت دعاییشون میرند با لیست خرید بلندبالایی میان و خدا رو به خرید میفرستند این مفهوم دعا برای اونها هست و تعجب میکنند که چرا در خلوت دعایی اونها اتفاقی نمیفته وقتی بالغ میشند یاد میگیرند که خدا یک بچه پادو نیست او کسی نیست که با لیست خریدی در دست دنبال خاسته های شما بودوه. ریژینالد توماس این حقیقت رو مثال میزنه. کاری که در دعا باید بکنید اینه که باید با کاغذ سفیدی در دست به خلوت دعاییتون برید و بگید خدایا من پادوه تو هستم. منو به خرید بفرست. مسئولیتت برای من چیه؟ میخوای با زندگیم چیکار کنم؟ منو دنبال کارهات بفرست. این نزدیک به روح دانیال در دعا هاش هست. ایسا روح دعا رو به ما یاد میده وقتی به ما یاد میده که چطور دعا کنیم در دعای شاگردان عیسی میگه وقتی دعا میکنید اینطور دعا کنید ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد پادشاهی تو بیاید اراده ات چنان که در آسمان هست بر زمین نیز اجرا شود سه بار عیسی میگه مال تو اولویت هاتون رو وقتی به دعا میایید مشخص کنید عیسی میگه اینطور دعا کنید نام تو پدر من اهمیتی نمیدم که کسی نام منو بدونه اما باید نام تو رو بدونند. نام خدا اساس کی بودن و چی بودن خدا هست. مردم باید این رو بدونن و این اولین چیزی که وقتی دعا می کنید باید بهش توجه کنید بعد عیسی به ما یاد میده که دعا کنیم پادشاهی تو بیاید چیزی که منظور عیسی هست اینه اراده تو بر روی زمین انجام بشه همونطور که در آسمان انجام میشه حرف اضافه در من فکر می کنم اینجا در این ظرف زمینی هست بگذار ارادت در من انجام شود همونطور که در بود آسمانی انجام میشه وقتی که سه بار در دعا خدا رو در اولویت قرار دادید نام تو، پادشاهی تو، اراده تو بعد از اون وارد درخواستاتون بشید و بگید به ما بده شما چیزهایی که نیاز دارید بر این اساس درخواست کنید تا اینکه وسیله ای باشید که توسط اون نام خدا جلال پیدا کنه پادشاهی خدا بتونه بیاد و اراده خدا بتونه انجام بشه. بعد وقتی که درخواست هاتون رو کردید، دعاتون رو اینطور پایان ببرید. پدر اگر نتیجه ای از جواب تو برای دعاهای من آید بشه از آن توست. من هیچ پادشاهی برای خودم نمیسازم. هر پادشاهی که ساخته بشه مال تو خواهد بود. من میدونم که قدرت جواب دادن به این درخواست ها از جانب تو خواهد بود. بنابراین تمامی جلال از آن تو خواهد بود. عیسی گفت به این ترتیب دعا کنید. این روشیه که دانیال در باب نه دعا میکنه چقدر زیبا میشد اگر پشت سر دانیال مینشستیم و به دعای قدرتمند او گوش میکردیم وقتی دانیال دعا میکرد جبرئیل فرشته بر او ظاهر شد این چیز زیباییه جبرئیل فرشته به دانیال میگه در ابتدای تظرعات تو امر صادر گردید و من آمدم تا تو را خبر دهم آیا این هیجانانگیز نیست دانیال داشت دعا میکرد و فرشته آمد و گفت دانیال در همون دقایق اول که زانو زدی پاسخ دعاهات داده شد و من اومدم به تو بگم که پاسخ چیه؟ این پاسخ خدا برای دعای دانیال بود اولین چیزی که فرشته به دانیال میگه اینه تو بسیار محبوب هستی خدا تو رو دوست داره دانیال آیا این سازگار با چیزی نیست که ما در مورد دانیال یاد گرفتیم؟ آیا فکر نمیکنید که خدا مردی مثل دانیال رو که در مقابل بابلی و پارسیان و مادیان در تمام این سالها ایستاد دوست داشته باشه؟ بعد جبرایل رویای هفتات هفته رو به دانیال میده. رویای هفتاد هفته یکی از ارزشمندترین نبوت مسیحایی در کل کتاب مقدس هست. رویا دقیقا اینه. هفتاد هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر میباشد و منظور از این هفتاد هفته که مقرر شده این هست. تا اینکه تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام برسد و کفاره به جهت استیان کرده شود و ادالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مختوم گردد و قدس الاقداس مس شود وقتی این شش منظور را از مقرر کردن 70 هفته مطالعه میکنید میفهمید که معنی اونها چیه میفهمید که معنی اونها اینه خدا پایین به دانیال نگاه میکنه دانیال نماینده قوم خدا هست و خدا میگه شما به حد کافی رنج کشیدید. حالا زمانش رسیده که من معجزاتی به عمل بیارم که برای شما امکان بازگشت به خانه فراهم بشه. همونطور که در مورد نبوتهای بازگشت از اصارت اشعیا و ارمیا میبینیم که با خبر خوش و نبوت ظهور اولیه مسیح یا آمدن عیسی مخلوط شده، این رویای هفتاد هفته نیز. یکی از ارزشمندترین نبوتها در کل کتاب مقدس است که مربوط به ظهور اولیه عیسی است. وقتی که این مکاشفه نبوتی به نام هفتاد هفته دانیال رو میخونید، باید کمی علم ریاضی به کار ببرید. چیزی که باهاش مواجه میشید اینه که خدا به دانیال میگه همونطور که اسارت هفتاد سال طول کشیده، فاصله بین اسارت و آمدن مسیح هم هفت برابر هفتاد سال خواهد بود یا 490 سال. این سالها میتونه تقسیم به هفته های سال بشه تا ظهور مسیح هفت هفته و شست و دو هفته خواهد بود و اورشلیم با کوچه ها و حسار در زمانهای تنگی تعمیر و بنا خواهد شد و بعد از آن شست و دو هفته مسیح منقطه خواهد گردید و از آن او نخواهد بود اگر همه اینها رو کنار هم قرار بدید نبوت ارزشمند مسیحایی رو خواهید دید تاریخ نبوت باید از زمان فرمانی که کوروش صادر کرد که اوسرا میتونند برگردند و اورشلیم رو بازسازی کنند حساب بشه. سه دوره بازگشت وجود داشت اما عمده ترین اونها در سال 457 قبل از میلاد بود. اگر 62 هفته رو به علاوه هفت بگیرید و اون رو ضرب در هفت بکنید عدد 483 سال به دست میاد. اگر عدد 483 رو به 457 قبل از میلاد اضافه کنید به عدد 26 بعد از میلاد میرسید. محققین میگن که مسیح خدمت عمومی خودش رو در این سال شروع کرد. حالا باید هفت سال دیگه هم بعد از اون باشه و در وسط اون هفت سال مسیح باید کشته بشه. محققین میگن که سه سال و نیم بعد از 26 میلادی زمانی بود که عیسی مصلوب شد. این یک نبوت مسیح بسیار ارزشمند هست. وقتی که از تمامی جزئیات نبوت های دانیال آگاه بشید، متوجه میشید که تفسیر کردن اونها بسیار سخته. خواهید فهمید که محققین اتفاق نظر ندارند. همیشه سعی کنید حقیقت بزرگ این مکاشفات یا رویاها ها رو دریافت کنید. چیزی که در این نبوت هفتات هفته دانیال واضحه اینه که شما پیشگویی ارزشمندی از آمدن مسیح و شروع پادشاهی او رو میبینید که هیچ پایانی نخواهد داشت. تمامی نوشتجات نبوتی نشان از این دارند که پادشاهی خدا به عنوان یک پادشاهی بی پایان میاد. اطاحت شاهان جهان رو برمیداره داره. به لحاظ کاربردی عملی منظورش دقیقاً اینه اگر شما یک ایمان دارید اگر شما یکی از قوم خدا هستید پس شما یکی از اعضای تیم برنده هستید. ما شاید در بعضی نبردها بازنده باشیم اما برنده نهایی جنگ خواهیم بود. نمیدونم شما در این مورد چه احساسی دارید اما این برای من بسیار تشویق کننده هست. بسیار خوشبینانه هست، مخصوصاً اگر در شرایط سختی مثل قوم یهودا که در اصارت بابلیها زندگی سختی رو میگذروندن زندگی میکنید، این میتونه برای شما الهام بخش باشه. اگر شرایط شخصی زندگی شما سخت هست، میتونید خودتون رو با قوم یهودا در تجربه اسارتشون مقایسه کنید. هرچه زندگی شما سخت‌تر باشه، بیشتر تشویق کننده هست که به جلو نگاه کنید و ببینید که مشیت الهی برای شما این امکان رو خواهد ساخت که پیروزی عظیمی بر شریر داشته باشید. خداوند بر شیطان پیروز خواهد شد و پادشاهی خدا به اوج خودش خواهد رسید. این چیزیه که تمامی این رویاها ها میگن. وقتی من دبیرستان میرفتم فوتبال بازی میکردم اما بازیم چندان خوب نبود که بتونم بازی کنه اصلی بشم. همیشه امیدوار بودم که بتونم بازی کنم. هرگز شبیه رو فراموش نمیکنم کنم که وقتی داشتیم رقیبمون رو میبردیم که سیزده سال بود نتونسته بودیم و رو ببریم مربی باید دیوونه شده باشه که به من گفت وارد زمین بشم من گارد دفاعی بودم وقتی داخل رفتم و جای خودم رو گرفتم آماده بودم من خیلی هیجان زده بودم که در یک چنین بازی بزرگی شرکت می کردم درست وقتی که توپ داشت شوت می شد داور دستش رو روی شانه من گذاشت توپ رو برداشت و اون رو بالای سرش برد و بازی تموم شد من خیلی ناامید شدم. اشکام سرازی شد داور مرد حساسی بود و به من گفت متاسفم پسرم وقت روی تابلو ثبت شده من خوشحال بودم که بردیم اما داغون بودم که نتونستم بازی کنم میدونستم اگر به هر مراسم جشنی برم همه از من خواهند پرسید تو هم بازی کردی تو وارد بازی شدی من ایمان دارم که تمام این رویاها به ما میگند که روزی خدا این دنیا رو بالای سرش خواهد برد و خواهد گفت بازی تمام شد وقتی خدا این کار رو بکنه آیا میدونید دونید که تمام ابدیت رو چطور زندگی خواهید کرد؟ در تمام طول ابدیت مسئله این خواهد بود آیا شما هم بازی کردید؟ آیا شما هم سهمی در این پیروزی داشتید؟ تمامی این نبوت ها به ما میگند که ما یکی از اعضای تیم برنده هستیم شکی در این نیست خدا برنده خواهد شد سوال بزرگ اینه که آیا شما سهمی در این پیروزی داشتی؟ شما تمامی ابدیت رو با این حس زندگی خواهید کرد؟ آیا سهمی در پیروزی که یقیناً خدا پیروز شده داشتید؟ معتقدم که این پیغام کاربردی و عملی این مکاشفات نبوتی و رویاهای دانیال است. شنوندگان عزیز، امیدوارم که شما جزء برنده ها باشین. حتی مهمتر از اون امیدوارم که شما فعالانه در بشارت کلام خدا به دیگران مشارکت داشته باشین. دایما اینه که این درس ها ایمان شما رو تقویت کنه و شما را تشویق کنه حتی در ایمان و تعهدتون جسورتر باشین تا برنامه بعدی خدا شما را برکت بده و حفظ کنه.